محمد، تو امروز بعد از ظهر بیکاری؟ نه، بعد از ظهر کار دارم تو بعد از ظهر بیکار نیستی؟ و امشب؟ بله، فکر میکنم، چرا؟ تو برای خرید وقت داری؟ نه، من وقت ندارم چرا وقت؟ نداری. چون امشب درس دارم. و سعید او امشب بیکار است؟ نه، او امشب به کتابخانه می رود. فردا به خرید می رویم. خوب است. پس ما فردا به خرید می رویم.